بسم الله الرحمن الرحیم سلام این صوت پنجامه و آخرین صوت از دوره رایگان تقریبت حافظه و جلوگیری از فراموشی محسن و معزنی هستم مدیر وبسایت ایران مزاج در چهار صوت قبلی اوامل کم کننده ی حافظه و یه مختصری از مزاجش رو توضیح دادم این صوت در باره کردن حافظه است خب حالا چی حافظه رو خبی می‌کنه؟ قبلش بگم که اول بعد چهار صوت قبلی رو انجام داد گوش کر. در کردن این مواردی که الان میگم بدون اون قبلیا نتیجه نمیده. اول باید علت رو برطرف کنی. علت کم شدن حافظه رو. تا به حرفای قبلی من گوش ندی عمل نکنی این حرفای جدیدم به دردت نمیخوره، نتیجه هم نمیده. اگرم بده موقتیه. خب بوی خوش حافظه رو تقویت میکنه. هر بوی خوشی، ولی باید طبیعی باشه، نه مصنوعی. نه بوی شامپو، نه بوی اسپری. باید طبیعی باشه. میخواد بوی گل باشه، میخواد بوی دارچین باشه، میخواد بوی نعنا باشه، هر چیزی. هر چیزی که ازش لذت میبری، ولی طبیعیش خوبه و بعد مناسب باشه با مزاج مغز. خوردن بادام شیرین به شرطی که تازه از پوست در اومده باشه عالیه. از داخل روز 3 دونه، یا صبح یا شب، آروم آروم مثل آدم‌هاس. جویدنش بعد طول بکشه. در واقع گفتم که باید تازه از پوست در باشه، نه که برید آماده بخرید. و بادام شیرین معمولی، ساده، خام خوردن کشمش یا مویز که اون نوعی از کشمشه و انگور بسیار عالیه. کشمش، انگور، شیره انگور به هر شکلی که مصرف بشه عالیه. گلاب و اصل، چه جدا باشن، چم را با هم حافظه را تقویت میکنن. اینکه چه جوری از عسل استفاده بشه در سایت ایران مزاج نوشتم. مورد بعد قرآن خوندن حداقل سه تا یه در روز و بعد, بعد از روی قرآن باشه، حافظه را تقویت می‌کنه. مسواکی زدن حافظه را تقویت می‌کنه. سرمه کشیدن به چشم هم برای خانم هم آقا که شرایطشو در سایت نوشتم بسیار بسیار عالیه. ورزش کردن بسیار عالیه مخصوصا اگه همراه با طبیعت باشه و همراه با دوستان. منظور ورزش‌های طبیعی نه مثلا بدن سازی. یه چیزی که در احادیث تأکید شده برای تقویت حافظه خواب خیلوله است. تنها زمانی که میشه در روز خوابید خواب خیلوله. زمانش 30 دقیقه قبل از اذان ظهر. و باید در صورت امکان این زمان خوابید، نمیشه استراحت، حافظه رو به شدت تخوییت میکنه خوابیدن در این زمان و بازدهی بدن رو هم بالا میبره. کندارم که دیگه معروفه برای حافظه های مفیده، ولی برای حافظه های سرد و بعد یکی رو جویده بشه. کلن تمرین به حفظ کردن حافظه رو خوی میکنه، دانش آموزا و دانش جو عالیه، چیز کلاف سرباز دیگه نمتونه درس بخونه چرا چون تمرین نداشته از بغضش استفاده نکرده کند شده است الان دانش آموزا و دانشجو بهترین حافظه رو بعد از امتحاناتشون دارن چون با تمرین کردن خبی شده یه مورد دیگه بعد چیزا رو نوشت چیزای الکی بعد نوشته بشه اصراری به حفظ کردن نداشته باش بنویس خریدای خونه رو بنویس به نفر قول میدی بنویس نظر می‌کنی بنویس چه اصراری است که حفظش کنی هر چیزی که نمیخوای مدام حفظش کنی نمیخوای در حافظه موندگار بشه بنویس اصراری نداشته باش حفظش کنی یه جمله‌ای هست که میگه کم رنگ‌ترین جوهرها از قوی‌ترین حافظه‌ها موندگارتره و هر چیزی که میخوای حفظ کنی میخوای یادش بگیری برو تو مغزه تکرارش کن فرزندت توی همسرت یه چیزی بهت میگه میره بیرون میگه این کارو انجام بده وقتی من نیستم مش باشه بگو وقتی رفتی بیرون ساعت چند این کارو انجام بدن درسته هرین وقتی گفتی باش یادت مییره بنویس همون لحظه برای خودت تکرار کن حداقل یک بار با صدا برای خودت تکرار کن و خوب قبل از مطالعه کردن دعای مطالعه رو بخونی که در مفاتیح هست خیلی کوتاه مختصره یک دقیقه بیشتر طول نمی کشه یه چیزی که حافظه رو خیلی قوی می‌کنه سنگ درمانیه یعنی راه رفتن روی سنگ جوری که به پا فشار بیاد روزانه حداقل 10 دقیقه توضیحاتشو در سایت نوشتم یه مورد دیگه روغن مالی کردنه روغن مالیه ملاج با روغن کنجد یا بنفشه، کنجد برای اونایی که مزاجشون سرده، بنفشه برای اونایی که مزاجشون گرمه یا اصلا نمیدونن مزاجشون چیه. قسمت ملاج سر، یعنی از جایی که مو رویده تا تقریباً وسط سر. اینجا رو روغن مالی کن هر شب، یک ربع. اینقدر باید مالش بدی تا روغن جذب پوست بشه، دیگه دست میزنی روغنی نشه. حداکثر 14 شب بعد انجام بدید. شاید تعجب کنید ولی بلند نگه داشتن ریش، شانه کردن ریش حافظه رو قوی میکنه. اجامت عام است. اجامت پشت کمر بین دوتا کتف که حافظه را خوی میکنه در هر سنی که فرد باشه حافظهش خوی میشه با اجامت عام این هم یک دوره رایگان خوب مفید مختصر ولی کامل درباره باره تخفیت حافظه مورد های هم برای تخفیت حافظه هست که من نگفتم نیازی نیست همین کافیه، زیادی هم هست کل این مطالب رایت کن، از صوت یک به ترتیب بیا جلو و مدام به سایت ایران مزاج سر بزن، منتظر خبرهای جدید باش، فیلمهای جدید، آموزشهای جدید، منتظر نظرات خوبت هم هستم. از طریق سایت، ایمیل، تماس، پیامک، واتساب، تلگرام با هم در ارتباط باش، تجربیات خوبت رو بابخی به اشتراک بذار. محسن معزنی هستم، مدیر وبسایت ایران مزاج. خدا نگهدار.